خب سلام عرض میکنم خدمت دوستان عزیز حالتون چطور خوبی؟ خوش اومدید به یکی دیگه از برنامه مخصوص 16 شهریور شهری و روز ویب لگ و خیلی خوشحالم که باز دارید ما رو دنبال میکنید و این برنامه رو دارید میشتوید امروز در خدمت یکی از عزیزانی هستیم که به نوعی میشه گفتش که تازه وارد این راه شده تقریبا و این راهو شروع کرده و خیلی خوب داره جلو میره و ادامه میده و من خیلی کیف میکنم وقتی که میخونمش یه دونه مطلبی در رابطه با اگر اشتباه کنم نظام آموزشی نمیشته بود که واقعا من خیلی دوستش داشتم و فکر میکنم که خیلی بیشتر از اون حالا سنش می نویسه و برای من خوب خیلی جالب بود و خب دعوتش کردن که امروز با هم به گپ و گفت بشینیم و شما هم امیدوارم که از این برنامه لذت ببرید خب از خیلی به این گفتگو خوش اومدی خیلی به افتخار دادی ببخشید با وجود این که وقتت خیلی پر بود مدرسه و باشکوینو داشتی و من اصرار کردم خیلی لط کردی وقتتو به من دادی و این برنامه رو تقریبا داریم آخرای شب زبط میکنیم فکر میکنم الان ساعت دهانی مینا باشه و خب مسلمان تا ساعت یکی کونی مینا طول میکشه و خیلی ممنونم که این افتخار رو به من دادی لطف کردی و که با هم, با هم صحبت بکنی و اصلا هدف من از این برنامه ایم بودش که با کسایی گفته بکنم که واقعا قلمشون و ویبشونو خیلی دوست دارم و خب تو از اونایی و خیلی خیلی خوش اومدی اگر حرفی داری و سلام که میخوای با شنوندگان عزیز بکنی با کمال میل میشنری سلام خدمت حاطف و شنوندگان عزیز خیلی ممنون که من کردی که با تون گفتگو کنم و خیلی خوشحالم. خب خیلی ممنونم خیلی خیلی خوش اومدی منم به سلام دارم مجددن و عزیز قبل از گفتگو میخوام اول خودت رو معرفی کنی و یه بیوگرافی از خودت بدی در حدی که قابل گفتن باشه و حریم خصوصیت خطر نیفته و گفتنش کلن برای میخواد هم نداشته باشه برامون بگو و بگو که یه خودتو معرفی بکن به صورت خیلی مختصر و اون طوری که دوست داری دونستنش برای بقیه اوکیه خب من سارام که با نام رو منو میشناسن 17 سالمه 4 تیر تولدم بود و خیلی توفه بلوک بیم تبریک گفتن بعد بکنم همین خیلی ممنونم لطف کردی خیلی از تولادت گذشتی ولیگه من تبریک نگفتم خب از اینجا تبریک بهت میگم و امیدوارم که همیشه سالم و سرحال باشی خب حساب که میکنم من خیلی ممنونم خاطر عزیز که هم تبریک گفتی ولی یادم نمیاد اون روز تبریک گفتی یعنی خیلی خیلی لطف داری در صورت و خیلی ممنونم حساب که میکنم من خیلی ازت بزرگترم پیش شدیم رفته آره آره دیگه حتما پیش شدیم البته یه،, یه چیزی اولش من بگم من اشکالی نداره که ما با هم خیلی صمیمی صحبت بکنیم نه غیر رسمی به خاطر اینکه کلن سامیمی خیلی بهتره و من راحت باهاش. نه بابا این حرفیه مگه چند سالتونه نه راحت باشه به تا من خیلی دوستم با هم سیم تر صحبت کنیم خب از خیلی خوبه خیلی ممنونم که بهم اجازه دادی که راحت باشم. خب بهم به بگو که کللا وبلاگ و وبلاگی از کی شروع کردی چند سالت بود و دقیقا چه سالی بود؟ حس حالت از اون موقع برمون بگو چطوری موقع فکر می و خاطره در کل اولین روزی که به این دنیا پیوستی رو برامون توضیح بده. من هنوز وارد 16 سال نشده بودم که وبلاگ نویس رو شروع کردم و اولین خاطرم اینه که اولین پستی گذاشته بودم شب قبلش خونمون دوست اومده بود. بعد راجع به اون نوشتم. بعد خب اولش که اومدیم خیلی دو کننده نداشتم. بعد یه سر سر شده بودن من با معرفه ای که از دوست آمده بودم بعد خب اون ها اصلا مثلا ت... حمایت کنند مثلا یه ای ذره اینا بالا بره دنبال کننده ها بعد بعد کم کم دیگه هی دوست پیدا کردم یه ذره شوق و ذوقم بالا رفت و اینقدر وابسته شدم که واقعاً چند وقت کار پیش میاد و نمیتونم خیلی به ویبلاگم سر بزنم واقعا تل میشم و حتی پس از قیس هم پیدا می که به دوستم سر نزدم و اینا خیلی عالی bari پس la pas taras تو یک سال ساختی خیلی خوبه و یه دوستی تو رو به این دنیا آورده و تقریبا تازه شروع کردی و خیلی خوبه بله میشه گفت تازه کارم و تازه شروع کردم. خیلی خوبه همه یه روزی تازه شروع کردن. اینی منم چهده سال پیش منم تازه شروع کرده بودم. ولی الان خب چهده سال گذشته ولی اشکال نداره ناحت نمیشه اگر بهت بگه تازه کار رو نمیدونم تازه شروع کردی ولد نیستی همچین چیزایی میدونی منظورم دقیقا چیه دیگه مثلا بیاد... اشکالاتو به شیوهی بعد یه موقع هست آدم اشکالو میگیره به شیوه درست و ادبی با ادب ولی بیان مسقرت بکنم میگن تازه کاری بچه‌ای و اینجور چیزات حالا از این اتفاقات افتاده یا نه و البته اینم توی پرانتز بگم شاید تعجب کنین که من یک سال دنبالت میکنم خودم نا اصلا ناراحت نمیشم اتفاقا مثلا اگه اونایی که مثلا خودشو خیلی وقته وبلوگ دارن مثلا انتقال کنن یا اشکالاتم بگن خیلی هم خوشحال میشم و مثلا سعی میکنم استفاده کنم ولی مثلاً اونایی که تازه واردن مثلا اهل کیمیا و اراد میگیرن و مثلا یه چیزی میگن و اینم مثلا باز فقط کوچولو مثلا ناراحت میشم واقعا یک سال دنبال میکنی دیگه یه سال هم دنبالت میکنن ازات که میسپل با واونوان میسپل می نمینوشتی و دنبالت میکردم خیلی قشنگم یادم منطقه من توی بلاک سکایی بودم و هنوز توی بیان نایمده بودم و قبل از وبلاگ توی کدوم شبکه های اجتماعی بودی و با کدوم شبکه های اجتماعی قبلا کار کردی و عضو بودی خب تا خیلی به من دوتری ممنون با ازت خب قبل ویبلاک نویسی خب من این داشتم تو جا که یکی ویبلاک نمی نشم و که آمدم بیان بود ولی تو شبکه اشترام این ایستاگرام داشتم بعد تلگرام بود و بعد اینا هم خیلی مثلا علاقه چندانی من واقعا به این دوتا دو شبکه و خیلی فعالیتی ندارم و مثلا دیگه کار واجبی پیش بیاد و اینا و همین پس که اینطور اول یعنی توی اینستاگرام و تلگرام فعالیت داشتی و خب ولی اونطوری که خودت گفتی مثل اینکه که علاقه به اونا نداری و فقط در حد نیازت و چون همه دارن مجبور شدی نسب کنی خیلی جالبه من فکر میکنم تو سنتا اولین کسی هستی میبینم که به اینستاگرام و اینجور چیزا علاقه نداره و محیط و بلوگو خیلی بیشتر میپسنده خیلی خوبه باری ادلا بعد سوال بعدی مزد اینه که برات وبلاگ و وبلاگ نمیسی چه معنی داره چه حس و حالی بهت میده و کلا برات این محیط چی تعریف میشه اگر برامون بگی ممنون میشم خب چون من علاقه ای بم... به یعنی اصلا محیط اینستاگرام رو دوست نداشتم وقتی وارد وبلاگ شدم مثلا آدمایی که توی وبلاگ مثلا بودن خیلی به نظرم متفاوت بودن با آدمایی که توی مثلا شبکه اینستاگرام فعالیت داشتن به همین اونجا مثلا پژوال خوبی بهم دست میداد احساس می می‌کردم واقعاً اونجا میتونم خودم باشم مثلا هر کس انتقادم کنه من مثلا چند یه ذره ناراحت شم ولی میتونستم خو... یه ذره سعی کنم خودم باشم تو چون تو محیط واقعی دنیای واقعی آدم مثلا خیلی کم پیش میاد بتونه خود واقعیش باشه و بخ همین حسال و به خوبی دست میداد و واقعا نمیتونم ازش بگذرم و هیچ جای نمی‌دونم جایگزینه اینجا کنم. کاملاً درسته. مم. خیلی عالیه. پس هیچ جایی وبلاگت تو نمی‌گیره. خیلی دادیم. البته اون زمانی که ما شروع کردیم شبکه‌های اجتماعی کلاً نبود فقط یاهو بود با یه چیزی مثل اورکات که اول خوب یاهو بود. من من اول یاهو داشتم، یه ایمیل داشتم، قشنگ یادمه. ولی خب اون ایمیل الان دیگه نیست کلاً. یه کسی دیگه یه مدتی به سر نزدم، ترمینیت شد و بعدش یه کسی دیگه اومد اشغالش کرد. ولی میگم من اون زمان ایمیل داشتم و خب اجتماعی نبود دو ما اجتماعیمون وبلاگ بود. سوال بعدی ما زد اینه که آیا خودتو یک وبلاگ نویس میدونی سارا یا فکر می‌کنی خیلی با وبلاگ نویس فاصله یا خیلی با وبلاگ نویسی فاصله داری؟ اه راستش اه خودم وبلاگ نویس من هنوز نمیتونم خودم یه وبلاگ واقعی واقعا بدونم چون بیشتر روزمرگی‌ها می‌نویسم خیلی متن ادبی و نه می‌نویسم اگه بخوام تمرکز کنم داستانی، داستانکی یا همون روزمرگیام خیلی قشنگ‌تر بنویسم بهتره کل اگه تمرکز کنم خب میشه چون خیلی تمرکز نمی‌کنم هنوز خودم یه وبلاگ نمی‌نویسم واقعا نمی‌تونم حرفت قابل احترام اما من کاملا باهاش مخالفم تو یک وبلاگ نویسی. نراحت نشو ولی تو تعریف وبلاگ نمیسی رو نمیدونی وبلاگ نمیسی تعریفی نیستش که چهار نفر در حد سلیغه خودشون خلاصش کردن وبلاگ نمیسی زیر مجموعه کامپیوتر و آیتی و نوشتنه یعنی ترکیب کامپیوتر و آیتی و نوشتن و نویسندگی که با هم میشه وبلاگ. تعریفش نمیتونه وارد یک سلیغه خاص بشه خلاصه یک سلیقه خاص بشه. کلا تعریف کلیه یک وبلاگ نویس کسی است که در وبلاگ می نویسد. مثل اینه که رو تعریف روزنامه نگار چیست روزنامه نگار کسی است که در اون روزنامه می نویسد. یا کتاب نویس کیست کسی که در آن کتاب می نویسد. یعنی این کلا کلیتش همینه. ولی اینکه خب یه نفر میره تخصصی مثلا چه می دونم از آیتی می نویسه یک کسی میره تخصصی از ادبیات می نویسه یک کسی میره تخصصی از شعر می نویسه اونا دیگه تخصصیه و اونا هم وبلاگ نویسن و کاملا هم وبلاگ نویسن واقعا ولی خب توی تخصص خاصی می نویسن حتی آدم روزمره هم بنویسه و تخصص ننویسه باز اسمش وبلاگ نویسه اگر داره توی وبلاگ می نویسشه اگر توی سیستمی که اسمش وبلاگ داره می نویسه بعد اسم وبلاگ نویسه باشه چون شما می من یه وبلاگ نویسم دوانهداری که ولی یه وبلاگ نویس واقعی فکر نکنم اینجوری بشه واقعی شو میگم ونه یعنی که وبلاگ نویس که آره هستم ولی واقعی فکر نکنم باشه <تصفيق> ولی به نظر من واقعی هم هستی ما چیزی به اسم وبلاگ نویس واقعی نداری آدم یا وبلاگ می نویسه یا وبلاگ نمی نویسه اه خب میدونید چون ما کتاب نویسه واقعی داریم چون کسی که کتاب ورن می نویسه خب نویسنده است در نهایت ولی ویبلاک قضیهش کامل فرق می کنه چون پروڈاکشن خیلی قوی نداره قیمت زیادی هم برای به قول محروف پخشش سرف نمی شه نهایتش یه سروره و یه صفح هست و چند تا کامپیوتر ولی فرق میکنه به لحاظ تعریف خب کسی که صرفاً تو یه وبلاگ می نویسه یعنی وبلاگ نویس واقعیه ولی خب من کردم ما وبلاگ نویس تخصصی داریم مثلا خیلی هستن که تو تخصص ادبیات دارن وبلاگ می‌نویسن توی فید خاص نمیشه گفت هر کسی که از ادبیات بنویسه از تخصص ادبیات بنویسه وبلاگ نویس واقعیه و هر کسی از روزمررش بنویسه وبلاگ نویس واقعی نیست. این میشه خلاصه کردن یه تعریف بزرگ که وبلاگ می باشه توی یه دونه موضوع خیلی کوچیک چون ادبیات یکی از موضوعات گسترده که آدم میتونه توللوگ داشته باشه. موضوعات خیلی زیادن و خب ادبیات خودش خیلی بزرگه ولی باز به نسبت تعریف وبلاگ یه قسمت کوچیکی رو میشه و آوردن جمع کردن این قضیه و گذاشتنش توی ادبیات یه مقداری، Uh, حرف درستی نیست و به نظر من هر کسی که تو وبلاگ می‌نویسه، وبلاگ نمی‌نیسه، ولی اون که روزمره بنویسه، ولی اون که حتی فوش بنویسه، ولی اون که فقط عکس بذاره، در هر صورت وبلاگ نمی‌نویسه. حق با من اینو اشتباه گفتم. حالا من از, از واقعیت تخصصی بود. ولی حق باشم هست بسیار عالی. آمارت برات مهمه؟ اصلا فکر می‌کنی مخاطب هدفت کیان؟ فیم کنی داری برای چه می نویسی؟ اصلا برای مخاطب خاصی می نویسی یا نه؟ دایره مخاطبات آزاده؟ راستش خیلی برام مهمه. مخصوصا اینکه مثلا یه پستی که میذارم چند نفر می بیننش. مثلاً حالا کامنتایی که میذارم برام مهمه. ولی میشه برای مهمه که اون متنی که من وارد وبلاگم میکنم، حرفای دل هم که میذارم، مثلا چند نفر میخونن. چرا؟ زمینه هم میگید مثلاً خانه نداره. خب میدونی دل, دل سرد میشه. مثلا اینجوری ولی وقت میزن کامنت که میزن اینکه یه آرامشی بهم دست میده خیالم راحت میشه البته با قسمت بچگونش مخالفم به خاطر اینکه فکر میکنم که ده ایج سال دیگه بچه نیست یه آدم بالغه و بعد اینکه که صد البته باید یک وبلاگ نویس برایش کامنت خیلی مهم باشه چون اصلا ما با کامنت هستیم و ما با مخاطب تعریف میشیم مثل اینکه یک موزیسیان داره آلبوم میده بیرون ولی هیچ مخاطبی نداره و علکی آلبوم میده بیرون. قطعا یه موزیسیانی هنرمند و تو این رشته یک وبلاگ نویس یه تولید کننده محتوا نیازمند به مخاطبه و به غیر از اون نیازمند نظر و فیتبک و بدون فیدبک اصلا وبلاگ نویس شکست میخوره و کاملا ممکنه حتی خطر از حذف شدن از دورم داشته باشه. اصلا غیر از این باشه بعد شککت. چون که ویبلاک دیویس با کامنت اولا انرژی میگیره و سپس با کامنت رشد میکنه با کامنت اصلاح میشه با کامنت اطلاعات جدید میگیره و به قول معروف میشه گفتش که از کامنت ها یاد میگیره و مهمترین اتفاق داخلی وبلاگ باید کامنت باشه و کامنت گرفتن خیلی مهمه و قطعاً باید برای تو هم هم آمارت مهم باشه و هم کامنتات به خاطر اینکه مثلا ما با مخاطب معنی میشیم بدون مخاطب که خب آدم میتونه بره از لوازم تایپ فروشی سر کوچه یه دونه دفتر بگیره با خودکار آبی و خب تو دفترش بنویسه اون دیگه هیچ مخاطبی جز خدا آدم نداره و خصوصی ولی وقتی که قضیه عمومی شد و آدم میخواست که حرفش رو چند نفر دیگه به و یک تریبون داشته باشه خب قطعاً هم آمار باید مهم باشه و هم اه، نظرات و خیلی خوبه که برای تو مهمه و منم خواستم نظرمو رو در تکمیل نظر تو بگیرم صد در خیلی برام مهمه کامنت مثلا برام بذارن ولی اینم که ببیننم برام خیلی مهمه خوب باید بب ببینن تا کامنت بذارن دیگه دقیقا درسته باید ببینن تا کامنت بذارن موین راهبر. به گوه این از تو دنیا کیو میشناسی؟ مثل تو عاشق و مثل خودم احساسی کو تر تر از من مگه جایی هست مگه جز دل به تو بستن دیگه راهی هست. دیگه دل دل نکنین دل منگه دل میشه تو نباشی جای خون تو دلم دیگه باز کن روی قلبم بزاد از ساتو منم یا تو دیگه هرچی تو بگی هرچی دلت میگه بیا ثابت کنیم اینش رو بغم دیگه بیا بس کن دیگه وقتش شده دو تو همون بزنیم تو بارون بعد از یک سال که الان گذاشته از وقتی که ساختیش تا امروز کلن از ویبلاکت راضی هستی از آمرش راضی فکر میکنی اندازه ای که زحمت کشیدی و وقت گذاشتی اون نتیجه ازش گرفتی یا نه آره خدایی مثلا اولش که کردم. شاید تا دو سه ماه اول مثلا سیدا دنبال کننده هم نداشت ولی از یه جایی به بعد مثلا یه دنبال کننده زیاد شد مثلا میفهمیدم فهمیدم که میزارن دوست دارن و خودم یزره دستم را افتاد. در خوب بود. بسیار عالی بسیار عالی. ولی خب من با قسمت دنبال کننده ها صرفا مخالفم. با دنبال کننده منظور کسی که قضیه رو دنبال میکنه نها با اون باکس دنبال کنندگان و اینکه دنبال کردن که چقدر چه تعدادی آدم اونجا دکمه رو زدن و نزدن. بخاطر خاطر اینکه به نظر من آمار غیر واقعیه یکی میتونه ویبلاگ تو رو تو سیستم دنبال بکنه ولی هرگز تو رو نخونه و یکی ممکنه اصلا دنبالت نکنه ولی دایم بهت سر بزنه و مطالبتو بخونه با تو رو من فکر میکنم از این جهت دنبال کننده واقعی خیلی ارزشمنده نه دنبال کننده سیستمی اونی که توی گوشه وبلاگت یه عدد میشه در نهایت اینه خب توی این مدتی که بودی محیط کل ویبلاغ ها رو چطوری میدیدی محیط کلیش به نظرت خوبه یا بد با حد خوب رفتار شده یا بد رفتار شده و در کل چه نظر و چه امتیازی به کل وبلاگستان فارسی میدی خب محیط ویبلاغ نسبت به شبک و اشتماعی دیگه خیلی بهتره واقعا ولی خب همه جا هم خوب داره هم بد ولی بیشتر خوبه مثلا بیشتر فرهنگی مینویسن یا روزمرگی هاشون هم که مینویسن مثلا چیز بعدی مثلا توش پیدا نمیشه که چند وقت قمگی نفاظت هم وارد شده ولی در کل خوبه رفتارشون هم خدایی اکثرا مثلا با احترام و عدب مثلا و مثلا چون چوچه هواک های مخالف اصلا خوب با هم رفتار نمیکنن. به خدای تو ویبلاک مثلا خیلی با ادب و احترام رفتار میشه در گل امتیازی که میدم مثلا اگه بخوایی 10 ده بدن مثلا نو میدم نه نه من, من منظورم نوشته هاشون نبود منظورم کلن رفتار ها و تعامل هاشون با تو بوده اصلا کلن تا چند تا وبلاگ دیدی؟ تا حالا که خیلی وبلاگ دیدم ولی دقیق نمیدونم چند تا ولی رفتارشون هم که گفتم دیگه. خیلی مثلا خوب رفتار میکنه مثلا بی احترامی من تا حالا نهیدم از کسی چند نفری بودن یه چیزایی گفتن که اونو هم وارد هرزنامه شدند. یعنی تا حالا نشدی که کسی بهت بی احترامی بکنه یا کامنتت رو تایید نکنه یا نگاه های مغرورانی بهت نداشته باشه یا یه لفاف تیکه اندازه و این جور چیزا تو آره نداشتی آره یکی دو بار شدش مثلا یه حرفایی مثلا سیاسی و اینا زده بودن بعد منم یه کامنتی گذاشتم خب حرفای اون که آقایی که مثلا این حرفو زده بودو قبول نداشتم. بعضی وقت کلی ازشون انتقاد کردم البته با احترام با ایشون خب وبلاگش دوبر های زیادی داشت و اینا اصلا وبلاگ کامنت من رو تایید نکردن. و دلیلش نه نمی‌دونم انتقاد من خوششون نمیاد یا یه جواب من ندن. من رو اما دیگه نه وبلاگشون رو خوندم نه دیگه برشون کامنت گذاشتم. بسیار عالی، کار خیلی درستی کردی به خاطر اینکه خب همین وقتی که آدم یه چیزی رو عمومی می‌کنه بعد منتظر هر فیدبکی باشه و آدم کاملاً بعد انتقاد پذیر باشه در صورتی که امروز توی جامعه امروزم اصلا انتقاد پذیری کلن مرده و ما هرکیزی رو نقد میکنیم راجبش حرف میزنیم و دوست داریم به قول معروف اصلاحش بکنیم و با جبهگیری گیری مواجه میشیم از این جهت خب تعمالاتمون رو باید ببریم بالا من با بچه های دیگه هم گفتگو کردم اونا هم همین نظر رو داشتند پس این وبلاگ ها در نهایت وجود دارن ولی خب تو بیشتر به ویبلاگ های سر میزنی که با ها اجتماعی خیلی خوبی برقرار کردن درسته؟ دقیقا خیلی برای رفتار طرف مهمه حالا نه با من مثلا با بقیه وبلاگ نویسا چجوری رفتار میکنه مثلا نصف کامنت ها مثلا من تا کامنت میزنید سریع دارم میخواد جواب بدم بزرگ و شوق و مثلا یا مثلا پس بی محلی میکنن یا مثلا یه نفر کلی باذوق خوشوق برای چیزی نوشته مثلا با یه استیکر پوکرフェイス مثلا جوابش میده. مثلا به نظر زشته مثلا نمیدونم من مثلا هرکیو با اینجوری باقا ببینم مثلا فبلیشن نمی‌خونه. خاصه از نظر تو کار زشتیه خیلی خوب. کسی هستی که تو دنیای وبلاگ نییسی به لحاظ رفتاری خیلی خیلی درجه یک باشه به نظرت؟ آری حسن چندتایی هم خانوم هم آقا که بعضیشون مثلا نمیدونم خان من یا آقا گمنامه ولی واقعا مثلا با جنس مخالفشون با احترام و مثلا با همجنس خوشنا خیلی می صحبت میکنن و مثلا نارهد میکنن کسی رو حرف بی احترامی مثلا میان رو میکنن ولی با احترام بازن این آدم احساس سعیمیت باشون میکنه و من اینجوری مثلا خوشم میکنه. خیلی عالی امیدوارم که همیشه باشن همیشه بنویسن همیشه حسای خوب. به بقیه بدن و خدا حفظشون کنه. خیلی خوبه اینا واقعا خیلی درست این دقیقاً اون ارتباط درستی که ما باید داشته باشیم و یه کار خیلی بزرگی نیست و درسته و امیدوارم که اینا همیشه باشن و همیشه بنویسن. ایدالت برای وبلاگ چیه؟ اصلاً آیا ایدئالی داری؟ هدفت هم در آینده برای وبلاگ چیه؟ اگه میشه اینو بهمون بگو. راستش یکم وبلاگ نویس که الان هم رفته من نهی قسمشو یادم نمیاد راستشون اصلا اولگوی فیبلوگی من بود اصلا خیلی خوشم میومد اصلا هم از سبک نوشتنش هم از قالب فیبلوگش خیلی قشم بود قالبش ام بعد ای که دارم مثلا دوستان رو نوشته هم کار کنم تا مثلا فیبلگم جوزه فیبلوگی دست بالا بشه یه ذره بیشتر شناخته بشه و فعلا همین بعد اون،, اون کسی که گفتی توی لینکات هست یا نه نه توی لینکام نیست اولی که وبلاگ می نوشتم مثلا دو سه ماه اول بودن بعد نه دست سوالات فرم می کنن کن دیگه خدایی مثلا به از فیبر بکر می بینی اصلا او باحت داره قدوم بکنه داشت بالای کامینت مثلا چه حرف پوست می زاره. یه ست تا کامینت مثلا زیرشه استخوی با آدم دست میده. بعد من اینکه خب آره خیلی خوبه روی نوشتات خیلی کار کن چون به نظر من چیزی که مهمه اینه که فقط من نوشته قوی تر بشهتون نوشته محتوایی پرتری داشته باشه و بتونه آدم های زیادی رو آگاهتر بکنه ولی اینکه حالا دست بالا دست پایین شدیگه شد من باهات مخالفم چون به نظرم هر... مثل اثر هنری میمونه هر اثر هنری به یه پشنگی خاص خودشو داره مخصوصیت خاص خودشو داره و نمیشه گفت مثلا آلبوم نگاه محسن یگانه از آلبوم من خدا سیزدن محسن چاوشی بالاتر یا پایین تر هنره میدونید و نمیشه اندازش گرفت یا مثلا کتاب نمیشه گفت چون که در نهایت اینا سل... اولا سلیغه هست بدم کتابه یه سریه خوشون میاده سری خوشون نمیاد تو کل یه استانداردی آره اولش باید وجود داشته باشه مثلا قلم چه میدونم جیک رولینگ با قلم من مسلمان خب خیلی فرق داره اون قلمش بیشرفته تره یا مثلا قلم من با قلم دولت یا هر کسی دیگه یا عباس معروفی یا صادخ هدایت قما با هم خیلی فرق میکنه میگم یه حداقلی رو اگر رد بکنه یه حداقل استاندارایی رو وقتی رد میکنه دیگه میشه کاملا صلیقه با این دست بالا دست پایینش من مفق نیستم مثل اون ضران مثلا, ضربار مثلا اگه هر گلی یه بوی خاص خودش داره ولی اینکه خب سعی کنی همرسانی کنی پستاتو و بیشتر دیده بشی این خیلی خوبه یعنی خیلی هدف خوبی خیلی خوبی هم هست سوال دیگه که دارم اینه که جریان های لینک, لینک هایی که توی وبلاگیت میذاری چیه اون گوشه اونا رو بهمون بگو اصلا برچه اساسی لینک میکنی و کیا رو معمولا لینک میکنی خب این لینک ها من اصلا اهل طب لینک و فالو کنی فالو بزن بک میدم و این حرف نیستم اه بعد اه لینک ها اونایی که مثلا واقعا حس سعیمیت با هشون دارم و بس وقت اصلا یادم میرم سمونه که خیلی باشون سعی میم بزنم تو لینکام بذارم ولی یا اونایی که مثلا یه نسبتی با هم دارن یا مثلا دوستشون دارم ویبلاگشو میبسنم تو لینک مثلا میذارم. ولی به نظر من تعداد کامنت ارزشی وبلاگی رو بالا پایین نمیکنه. و همه یه ها ارزش خاص خودشون رو دارند و همهشون ارزش دارن چون که یک یه کامنت میگیره و چون که هزار تا میگیره همهشون ارزش دارن همهشون دارن تولید محتبا میکنند و همهشون هم ارزشمندن و ارزش دارن با این حرفت کاملاً مخالفم صرفا تعداد کامنت و تعداد دنبال کردن نمیتونه به یه چیزی ارزش بده توجه میکنی نمیتونه اون رو تاییدش بکنه صرفا. ولی خب آره هستن زیادن و ما خب ویبلاگ نمیسیم مخاطب دوست داریم نظر دوست داریم ولی خیلی علمان های دیگه هم هستش به نظر من و صرفا نمیشه ارزش گذاری کرد بر حسب حالا مطلب بر حسب تخصصی بودن یا روی سریقی خواست نمیشتن یا تعداد کامنت و دنبال کردن و اینا نه با این مخالف بعد خودت وقتی که یه وبلاگ کسی دیگه میری لینک که گذاشته رو نگاه میکنی؟ آره خب مثلا اونایی که ویبلاگشون دوست داشته دو رو هم مثلا میرم نگاه میکنم ببینم کیار رو کرد و اینا بعد مثلا اینجوری فقط اهل کتاب و کتاب خوندن هستی؟ آره کتاب آره من عاشق کتابم مثلا ارتباط خوبی با کتاب برقرار میکنم و هه کتاب خوندن. حس خوبی و ببین بم بگو که خیلی کتاب میخونی؟ خیلی خوبه کتاب خوندن تو اوقات فراغت خیلی خوبه. منم یه مدتیه که اصلا شلوغ شده کم کتاب میخونم و وقتشه که اینو اصلاح کنم. خیلی عالی. کدوم کتابی که از همه بیشتر دوستش داری؟ یعنی توی قفست نگاه بکن ببین کدوم کتابی که از همه بیشتر دوستش داری و اگر کسی اون کتاب رو ازت قرض خواست دلت نیادون که قرض بدی و Uh, میتونه چند تا کتاب هم باشه ها یعنی فقط یکی نه به ما موقع کدوم هاشون رو بیشتر اصلا دوست داری اسم ببر اگر میتونی خیلی وقتشو ندارم مثلا خیلی کتاب بخونم جون مثلا هم مدرسه میرم هم ورزش میرم مثلا برای این توقات فراغت هم اکثرا کتاب میخونم خیلی ولی پس کلن آدم خصیصی هستی و کلن اصلا اهل قرار دادن کتاب نیستی خیلی خوبه uh, این خوب که نه ولی خیلی خوبه اگه برای کسایی که نازاد کتاب قرض میخوان نسخه الکترونیکیشو براشون بخری هدیه کنی خیلی خوبه و اینکه یه لطفی بکن میتونی یک پاراگراف خیلی مورد اول اولاً بگم من کتاب کنت مونت کریستوی که معرفی کردی خیلی دوست دارم خوندمش و واقعا کتاب کتاب فوقلادهیه و خیلی کتاب های خوبی خوندی باریکالا و میتونی یه پاراگراف از کتابی که دوست داری رو برامون انتخاب کنی و برامون حدیهش کنی و از روش بخونی یعنی یه پاراگراف از یک کتابی رو که دم دست تر رو برامون هدیه کن این کتاب همون قرض نمیدم خیلی مثلا احترام برش و بجام دوستش داشته باشم کتاب بهش بدم بعد کتاب که دوست دارم یکی کونت الکساندر دوما مثلا نوشته ترجم چیزش رو نویسندهش آوای وحشه تصویر درگانگریه قرور و تعصب بلندی های بادگیر بعد قهوه سر آقای نویسنده بعد تخت خوابت را مرتب کن بعد تکیه های شده و فهمان روایان فرومایه و سه کتاب اقوان سالسم خیلی دوست دارم خیلی خوبه خیلی کتاب خوبی رو خوندی دوست من کانتوماند کریستا رو خیلی دوست دارم و خیلی خوبه بس و یه چیزی دیگه هم الان یادم افتاد بگم اونم که اصلا آدم خصیصی هستی کلند کلند هر قرض دادن کتاب نیستی مم. ولی خب خوبه که وقتی که کسی ازت کتاب قرض میخواد نسخه الکترونیکیشو بخری بهش هدیه بدین حس بهتری میده تا اینکه آدم خصیص باشه کتاب قرض نده چون کتاب در نهایت داناییه ولی کنت فون کریستو رو خیلی دوست دارم و خیلی خوبه که اهل کتاب هستی و کتاب می‌خونی اه... یه خواهشی ازت دارم میتونی یه... یه پاراگرافی از یه کتاب از یه کتابی که داری ما رو مهمون کنی حالا اگر دوست داری میتونی پاراگرافی رو بخونی که خود دوست داری یا راجبش فکر کردی و میتونی صرفا یه پاراگرافی که کلاً دوست داری به ما هدیه بکنی بخونی در هر صورت یه پاراگراف رو لوس کن انتخاب کن و ما رو مهمون یه پاراگراف یا یه جمله از اه... کتابی که دم دستت بکن و برامون بخون. این چیزی که میخوام بخونم اثر جوی فیلدینگ و نامه ب... نامه‌ای به کودکی که هرگز زاده نشد خواستنی بود از ترس بیگزی خواستنی که در آن دنبال چیزی درون خودم میگشتم که دست نیفتنی بود خواستنی بود از علاقه به تصرف کردن و پدت در تصرف قرار گرفتن. اما خواستنی بود از تشنگی که هنگامی که به سیری انجامید سوی می شود. استفراغ. و زمانی میرسد که تو برای لحظه نگاه هم دیتنگی. و آن زمان رو روی آینه برای قرورت کف بزن. اما این من بودم که گذشتم. و تو هم از مردانیت بگذر و آن را کنار بگذار. و من زنم زنی که از سپیده صبح تا سیاهی شب در غریبان سرین حالت چندین این بار فرو می ریزد. میخواستم تا بگویم که ها زاده مادرانی هن. نه پسران پدر. <تصفيق> بو منو ام من خسته من انتخاب قشنگی بود خیلی ازت ممنونم انتخاب خیلی خوبی کردی و خیلی ممنونم که ما رو مهمونه یه پاراگراف کردی خیلی تشکر میکنم سوال بعدیم ازت اینه که فکر میکنی تا کی بنویسی و به هم بگو که چی میتونه تو رو از نوشتن و دنیای وبلاگ بگیره بشت میکنم که که من فکر میکنم تو هر موقع که مثلا چیزی مانعی هم نشه مثلا اینترنت قط نباشه یا مثلا نه شوخی میکنم مثلا اتفاقات خانوادگی یا مثلا یه شخصی باعث چه مثلا من دیگه فبلیگ ننویسم مثلا این تابستونی من فوق العاده مثلا اندازه ذهنی مثلا درگیری داشتم با خودم با خانوادهم با مثلا درسام همیشه این تو هم دیگه پیچیده بود یه ذره حالمم بزن بد بود مثلا دیگه واقعا دست و دلم نمی‌رفت بنویسم و مثلا انگی هم همچنین اتفاقاتی بیفته که من کلا دیگه خدا کنم امیدوارم همجوری هیچ وقت طولایی نشه ودی دیگه که بشه دیگه تقصیر من نیست چقد بد چقد بد امیدوارم که همیشه این اتفاقات نیافته و همیشه باشی و بنویسی و بنویسی و بنویسی, و بنویسی ما و بخونیم و بخونی, ما بخونی, ما بخونی, ما بخونی. ما دارم که همیشه باشی و هرگز حت حتی امکانی وجود نداشته باشه که یه روزی خاموش بشی نظرت راجع به من و ویبلاگی هم چیه؟ اینو به هم بگو خب وبلاگ تو دوتا وبلاگ داری فکر کنم وبلاگی اصلیت فکر کنم بیشتر چیزهای عمومی مثلا اطلاعات عمومی یا مثلا چیزای چالش که برگزار میکنی فبروکیت دوست دارم چیزای جذابی مثلا خیلی وقتا ایده میگیرم خیلی وقتا مثلا یه چیزایی نمیتونم واقعا کمکم میکنه و به نظرم واقعا فبروکیت جذابی داری و خودت هم جز هستی که واقعا توی دوستشون دارم و برای فبروکیت وقت میذارم و در کل عالی خیلی خیلی ممنونم و باعث خوشحالی منه که انقدر به من لطف داری، نظر لطفته، خیلی به من محبت داری، خیلی ممنونم، خیلی خوشحالم که گفتی ازش ایده میگیری، خیلی خجالتم دادی، تشکر میکنم و ولی من دو تا وبلاگ ندارم. من یه دونه وبلاگ دارم و بیشتر مسائل روزمره‌مو پخش کردم توی گوگل پلاس‌م و تلگرامم و اینستاگرامم. بیشتر استوری میذارم ولی خب در هر صورت نظر لطفته خیلی ممنونم که دنبال میکنی سوال بعدی که ازت دارم اینه که فرض کن جامون عوض بود و فرض کن که تو داشتی از من با من صحبت میکردی و از من سوال میکردی چه سوالهایی رو میپرسیدی؟ لطف کن بین یک تا سه تا سوال رو الان از من بپرس ولی من هدفون رو در میارم و سوالات رو نمیشنم هم. و وقتی که خواستم این صدا رو درست بکنم و منتشر کنم این سوالاتت رو میشنمم و بهشون پاسخ میدم و هر زمان که فایل گفتگو منتشر شد میتونی تو جواب سوالاتت رو بشنوی و این جواب آخر برنامه است این سوالات چیه؟ این سوالاتت رو از من بپرس تو تقریبا جزفه بزرگوی ویپلک به حساب میایی بعد دوست هم به بعد از مثلا ده دوازه مثلا 16-14 سال وی نوشتن هدفت برای آیندت مثلا دوباره چیه مثلا تا الان عالی مثلا بعدش میخوای چی باشی سرمیترین دوستات توی بیان یا حالا هر جای دیگه بدونن کیان و از نظر تو مثلا کیا مثلا بهترینن تو بیان و تو واقعا میپسندی هم خود وی رو هم و مثلا طرف مقابل خب ظاهرا دو تا سوال پرسیدی و خب مسلما من نشنیدم و بعدا پاسخ بهش میدم دوست داری که ستاش کنی یا همین دو تا کافیه آره راحت باش هر کدوم ما مثلا دوستشی بده من این خیلی کلی پرسیدم ببخشید خب باشه پس من همین ها رو پاسخ میدم خیلی ازت ممنونم که پرسیدی و یشب باش داریم به سوالات آخر نزدیک میشیم آخ آخ من حسابی ازت معذرت میخوام چون خیلی بد تایم و خیلی ممنونم که شرکت کردی باز هم ازت تشکر می کنم. ببخشید انقدر بد تایم الان فکر می کنم ساعت طرف های شب یا ببخشید الان فکر می کنم ساعت طرف های آره دیگه دقیقا ساعت طرف های و روبه و شب خیلی معذرت میخوام خیلی زودتر تمامش میکنیم که زودتر بخوابیم خواسته ای که ازت دارم اینه که مخاطبین این گفتگو رو به یه موسیقی مهمون کن فقط کافی اسم این موسیقی رو یا خانندش رو اینجا به همون بگی که وقتی که گفتگومون من شد به عنوان تیتراج پایانی برای رشنمندگان پخش بشه و دلیل انتخابش و حست از این موسیقی رو هم باید بگی ولی چیزی که خیلی نکته‌ای که اینجا هست و مهمه اینه که اگر این موسیقی به صورت رایگان پخش شده باشه، کل موسیقی رو در تیتراژ پایانی ما میشویم و اگر نه این موسیقی توی آلبوم خاصی باشه و در حال فروش باشه، یعنی شامل قوانین کپی رایت باشه، ما فقط میتونیم 50 ثانیه از این موسیقی رو پخش بکنیم و بعدش یعنی محدوده ولی خب میتونن دوستان برند بخرن. این موسیقی به خواننده های ما هدیه بکن و مهمونشون بکن. همینم چه جیدن، هی سو حاله موزیک غمگینه. اشکال نداره، فقط خوانندش خیلی سرشناس نیست و قشنگه ولی من حس آرامش بهم نه مشکلی نداره، فقط کافیه مهمون کنی. مهم مهمون کردن یه موسیقی. خب یه دونه فایل برام فرستادی. علی صدیقی و اسم موسیقی هم وابستگی هستش که چند مندگاه نزیزی میتونن در پایان این گفتگو این موسیقی رو به طور کامل بشنمند. خب و اینکه که سوالیه مونده باخر اینه که نظرت در رابطه با این گفتگو حس میکنی که چه سوالی بعد ازت میپرسیدم که نپرسیدم؟ راستش به نظرم گفتگو عالی بود، کامل بود. به نظرم چیزی نمونده که مثلا بخوام جواب بدم. و به نظرم هر سوالی که باید میپرسیدی و پرسیدی خیلی ممنونم به امروت و اما سوال آخر سوال آخر سوالیه که من از یه برنامه خیلی پرترفتار و عزیز رادیویی که خودم هم دنبالش میکنم پادکست هاشو و گوش میدم کپی برداری کردم و یه مقداری تغییرش دادم و وقتی که بپرسم متوجه میشن کدوم پادکست رو میگم خیلی به این پادکست من ارادت دارم و خیلی دوستش دارم و دوست داشتم ای این سوال رو همینجا بپرسم. و این سوال اینه که درست اون لحظه‌ای که حسابی خسته میشی و ناامیدی و میخوای کلا ببندی و بری و میگی دیگه بس دیگه نمیتونم بنویسم و میخوام ببندم و برم چه نیرویی چه حسی چه کسی چه چیزی یا کلا اصلا چی تو رو دوباره به مسیر برمیگردونه و باعث میشه که نظر عوض و دوباره بنوشتن ادامه میده. راستش بعضی وقتا مثلا هی hey, میام تو وی مثلا میبینم هی hey, مردم مثلا دو خری و بسر رو فاظتی مثلا آقا میکنن ما خودمون زارد و مشکل داریم بعد مثلا یه چه وقت دوباره مثلا زره دیر میشه نمی ولی میگم که اینقدر مثلا حس وابستگی به وی زیاد شده و دوستان ما مثلا واقعا دوستان بینم چه افتاده چه وقت که نبودم مثلا چه پستی گذاشتن و مثلا برای کامنت ها دوباره خب عالی امیدوارم همیشه ادامه دار باشی و همیشه بنویسی خیلی ممنونم که توی این گفتگو شرکت کردی و خیلی دوست داشتم که با یه دوستی گفتگو کنم که تقریبا تازه به وبلاگ و وبلاگ نویسی اومده و تجربه کمتری هم توی این زمینه داره و خب خدا رو شکر تجربت بد نبود و بودنت بد نبود و خوب خیلی جای امیدواریه چون اگر این تجربه بد بود این سوالاتی که ازت کردم در رابطه با کل محیط اگر تجربت از این محیط بد بود مثل خیلیا که خیلی اصرار بهشون کردم که نرن تو هم سونا رفته بودی و دنیای وبلاگ مسلما از دستت میداد خیلی ممنونم که تو این گفتگو شرکت کردی و خیلی لطف کردی ببخشید که تو دیر وقت بیدارت نگرداشتم و خیلی حسابی عذیت شدی با وجود اینکه فردا کلاس داشتی و خیلی خیلی ازت ممنونم خیلی تشکر میکنم ازت امیدوارم همیشه موفق باشی و بنویسسی امیدوارم روز به روز بهتر بشی و در نهایت چیزی که و در نهایت به چیزی که میخوای برسی برسی و چیزی که میخوای بشی بشی و امیدوارم من هم در کنارت باشم و هر کمکی که از دستم برمی اومد انجام بدم خواهش میکنم، کاری نگارم. تو خیلی به من لطف کردی که مثلا از من دعوت کردی که مصاحبه کنم با و خودم خیلی خوشحال شدم. از, از خودو فیز میکنم و شانه که وقت گذاشتن و, و گوش دادن هم میکنم و امیدوارم که به همه آرزوهاتون برسید و خدا خودفز... <تصفيق> حالا وقت پاسخ دادن به سوالاته اول سال اول رو گوش میکنیم و بعد بهش پاسخ میدیم خیلی سوال منطقی و بسیار به جایی بود و ازا تشکر میکنم که این سوال رو از من کردی آینده همیشه هست و من یک آینده خیلی محکمی و آینده خیلی تصمیم گیری شدهی براش ندارم ولی فکر میکنم اون ویژنی که دارم و اینکه اون ایدئالی که دارم اینه که یک ویبراکی خیلی خوبی داشته باشم که مطالب خیلی زیادی داخلش باشه و مطالب مفیدی داخلش باشه که به درد برقیه بخوره و بیشتر اینه که من فکر می‌کنم باید باشه و فکر می‌کنم هدف اصلیم این باشه که خیلی بیشتر روش تلاش کنم نظرم بسته بشه نظرم آرشیب از بین بره و سعی کنم نیگرش دارم و روز به روز بهترش بکنم فکر میکنم هدف بعدی میده ولی خب فکر میکنم اون چیزی رو که از وبلاگ نویسی میخوام بهش رسیدم و الان دارم استفاده میکنم و فکر میکنم همین رو هم ادامه بدم براش هنوز برنامه ریزی خاصی نکردم ولی قطعا هدف اصلیم کمک کردم با آدمای بیشتری، امید دادن با آدمای بیشتری بیشتریه و اینکه آگاهی رو بالا ببرم و اینکه که آدم ها رو بهشون آگاهی بدم چیزها... چیزهایی بهشون یاد بدم و خب این قسمت خیلی مهمیه خب میریم به سوال دوم پاسخ بدی سوالی که از من پرسیدی بسیار سخته خیلی سخته که انتخاب کنی که خوبه مثل اینکه مثلا بین این همه کتابی که وجود داره آدم بگه این خوبه این از همه بهتره نه خیلی سخته و خب منحصر به بیان هم نمیشه و تو کل سیستم های نویسی نویسین ولی کسی که قلمش رو خیلی دوست دارم و سیقه من بهش نزدیک تره میتونم به الهه اشاره کنم میتونم به زمزم اشاره کنم که خانم مینوچهر خانم اگر اشتباه نکنم می نویسه و میتونم به وبلاگ خورشید شب اشاره کنم که می نویسه یه دونه وبلاگ هست توی بلاگ اسکای مینی نویسه و اسم نویسنده‌ش ساراست من خیلی وبلاگش رو دوست دارم وبلاگش توییت توره و خیلی جالب و بامزه است و من واقعا وبلاگش رو دوست دارم و خیلی خیلی زیادن من اگه بخوام اسم ببرم بعد از خیلی اسم ببرم پس فرض میگیریم که این اسمار هم نگفتم به نظر من همهشون شون هم و من هر کسی رو که میخونم با عشق و علاقه میخونم و به نظر من همه عالی همه بهترین هم. و هیچ بهتری از بقیه وجود نداره همه درجه یک هم. خب به پایان این برنامه صوتی رسیدیم امیدوارم که لذت برده باشید و استفاده کرده باشید خیلی ممنونم که ما رو دنبال کردید و دنبال می‌کنید ما رو حمایت بکنید و اگر دوست دارید میتونید که لینک این پادکست رو, رو روی وبلاگ هاتون بذارید و امیدوارم که از این گفتگو لذت برده باشید من حاطف بودم به عنوان گوینده این پادکست و این پادکست ها تولیدی انجمن وبلاگ نویسان فارسیه امیدوارم که همیشه توی اهدافشون موفق باشن و من به عنوان گوینده در این پادکست حضور داشتم خیلی خوشحالم و که ما رو دنبال کردید و شما رو به خدای بزرگ می سمارم. خدا نگهدارتون وابستتم دل بستتم دل همون ندیدی حالم بده روزام تعریفی نداره چشمای من هر شب دلش میخواد بباره برگرد تا یک رو رامش بگیرم من جز سمت هیچ آخوشی نمیرم ش تو آرمی شل یادت نباشه دنیام توی فقط میخوام همون تو باشم وابسته با تام وابسته گی همون ندیدی دل وابسته تام دل وابسته گی همون ندیدی حالم بعد بروز آمده ریفی نداره چشمای من هر شب دلش میخواد نباره نه حسی بود نه داشت شرح حالا چشاش حتی نمیم دیدن این فضاها گذشت از احساسات قلبم بی خیالا ولی با این همه بازم میخوامون نگاهو برگرد تا یک عمرو رامش بگیرم من جستو سمت هیچ آخوشی نمیرم چطور میشه لحظه یادت نباشم دنیام تویی فقط میخوا مال تو باشم وابستتم وابستگی همون ندیدی دل بستتم دل همون ندیدی حالم بده روزام تعریفی نداره چشمای من هر شب دلش میخواد دوباره آبسته تام آبستگی همون ندیدی دل بسته دل بستگی همون ندیدی حالم بده روزام تعریفی نداره ش اسمای من هر شب دل هش میخوابد واره.